صاحب ابن اباد میگوید یا امیر المؤمنین المرتزا, ان این قلبی اندکم قد وقفا، كل ما جدت مادی فی کم، قائل از نسب نصیت سلفا، من که مولای علی جنزاه دان، تلقد دنیا سلاوسان و بفا. من دویل تیر ان یا کله، ولنا فی بعضها مكتفا من وسیل مستفع اندکم. و ووسی المصطفى من یستفا منظورم در این یک بیت آخره وسی مستفا جانشین مستفا در نظر شما چه کسی است و وسی المستفا من یستفا وسی مستفا اون کسی است که استفا شده باشد خداوند انبیا رو استفا میکنه یعنی برمیگزینه خودش برمیگزیند پس وسیش را هم باید خودش برگزیند